اول <سؤال> دو بلر شیطان وجی بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد و صلی الله یا آمنوا صلوا علیه و سلم تسلیما الله صلی محمد و محمد و ما زیاد که میشه موضوع لباس است بسیاری که اساسا رد مسائل لباس زیاد اختلافات است. هازیام که لباس اسلامی وجود نداره. و بعضی ها کم میشن بیان که همه لباس هایی که ما روزانه می از ما برلمان لباس اسلامی است. اگر کسی پس لباس نپوشه، او لباس اسلامی نیست. از این خاطر ما درباره حجاب و حجاب زیاد صحبت کردیم و یک مشکل دیگه است که بسیاری از مدها عادتن فکر میکنن که مرد هیچ در مسائل لباس و ستر عورتی که با نیست وقتی که مرد است قصوری که عورت تا بود که به غر معنی نیست که زان نیست دیگه بیخی نامشه که آدمو در بلد از شریعت اسلامی به هر چیز این روید شما که در دین مقدس اسلام از احارات گرفته شده تا خلافت از گرفته شده تا خلافت برای هم زی احکام است و انسان مسلمان همیشه وقتی برش مفتبه که یا ایوزا الذین آمنوا دخلو فی السلم کافه ولا الطبی و شیطان شما در اسلام مکمل بخشه اکتداد مسلمان ها بودن، دیر روز من اگه حدیث شریف بخوند که پیغمبر روز شنبه بر ما مثلا ما یهود بودیم مطوانا میخوندیم اگه بر ما اجازه بودیم ما مسلمان هستم جمعه رو کار ندارم با رو قصد روز شمبه باشد پس ما یا مثلا مسلمان هستم نه به لباس اسلامی چی یا لباس اسلامی وجود نداره نه لباس اسلامی وجود دارم با شرایطش یعنی شرایط اسلام بیان کنند بیان همین شرایط در یک لباس باشه، او لباس اسلامی است و لباسی در یک منطقه می پوشن مثلا لباس افریقایی افریقاییست مثل ما شماری کنند دون نمی پوشن به اخصوص لباس دراز می پوشن یا, یا لباس های گلدار می پوشن یا لباس های سختونمانش مثل سختونمار پس بس ما پسه نمینم که لباس مه پرنتونبان ما, ما و اسلامی و پرنتونبان تو اسلامي نهیس چر ا دین دین افغانستان نهیس دین بر مردم افغانستان تنهوا بره ز مردم افغانستان دین بر کل بشریتا ن کل رهان پر اسلام شرایط خده مک لباس فرهنگی تو اسلامي مېشه بشر دی کښې این شرایطه داشت و خیلی اسلامی میشه وقتی که اینی شرایط داشته بعضی همان لباس راید ما اسلامی فکر میکنیم، او لباس اسلامی نیست مثلا ما اگر روزم اتر سوال شدن که یک نفر یک خانم کوچی هست این در تابستان تکه چی چیز بشیده که ایران او چکار تکه بسیار و گرد است و بسیار دراز هست و آستینایزی بسیار کلام کلام اینالا این وقتی که از دست خدایی خانم از چیز محتر گرفت در آستین ازیب اما دهی قسمت و این دستشکالش خالون میشه اگر برای تو گوچه بود که نمی لباس اسلامی نیست نمی لباس نمی آستین این سیستمش اسلامی نیست تو باید آستینه هم بعد این خانم بشه ای در جور بوید که دست خدا باید باید این قسمت های وقتی که ای آمد آسلین ده اینجا آمده ولی دست کرده یا مثل پوزی خود از هر شانه خود میده؟ میده اینجا پایین میشه اسلامی نیست پس ما ما باید بگویم که آنچی فرهنگ محمد مربانستان محمد است این اسلامی است و آنچی فرهنگ دیگر است. نه، خیلی. هر کس لباس خاص خودت داره ولی در اسلام شرایطش شده شرایط شده اینی شرایط اگر بود اسلامی سوء گت نبوده چې خاطر موږ موږ روزه سره لباس بحث د یوې که دین اسلام ده عباره کیږي آیتی آی تشریف تاس که العمود له شیطان بسم الله الرحمن الرحیم یا بني آدم لقد انزلنا علیکم لباسا یوری سواتکم و وریشا و لباس التقوه ذلك خیر ای څوې عارف آی ته بستر و دست آیت بستفت مزید یا بنی آدم لا یفتنن لکم الشیطان کما اخرج عباویكم من الجنه چی مي میگه الله جل جلوه؟ میگه یا بنی آدم ای اولود آدم لا یفتنن لکم الشیطان شما را شیطان فریب نده چی نکنه شما را شیطان کما اخرج عباویكم من الجنه مثل که واردین شما را، مادر و پدر شما را، حضرت آدم علیه السلام و هوا را با اونمو چال مکنه که داشت، بلاخره از جنت کشید شیطان چی می شیطان آمد وقتی که اینا را لغزان، بالاخره سبب از, از شد که لباس های زینا هست، می شد لباس جنتی که بود داشت پس شما را هم را قرآن بردن که فریم فریب های انسانی است و شیطان‌های های هست که بیا شما میگه مسئله لباس مشکل نداره و پیره های عزت ابراهیم میگفتن ما پیرو ابراهیم برای زیمان شما برای زیمان شما برای زیمان صحبت کردیم یکی مشکل اصاسی شانی بود که اونا را گفت که شما باید به لباس قواه پس وقتی که اینا به لباس تا باف کردن عبادتشان اخراب کردن چرا که اخلاق و آداب اساس است در عبادت هر عبادتی که منفی اخلاق شد او باز عبادت میست مثلا نماز منفی اخلاق، منفی ستر عورت به عورتی و لچی و برهنگی رفنگی نماز باطل میشه روزه منفی اخلاق، روزه باطل میشه مرزداور و چی باشه؟ که از دشنامش می‌توه که چه می‌کن باشه دو دکل بگی این می‌سایم. مرزداور میاد، مرزداور می‌گه دشنام می‌دی چه می‌کن ماجم نمی‌کن. زکات کرده. زکا تلویزیون صداقتی کن بلمن کن. ای مسلمانان زکات با من نت کویزایی مقابل و با عزیت رساندن می‌جنم مقابلی را دو پرزه سرشونه گن میگذار، لا لو، پس منت گذاشتن بد اخلاقیست و اذیت کردن خردم بد اخلاقی به نه انگوته که از بد اخلاقی دوری بکن در حج منفی اخلاق حج خراب بشه لا رفص ولا فسوق ولا جدال بل حج که حتی با همسرت سرد سخنای شرموار نگوی ولا فسوخی دفای فاسقهای نگفت تو در حج بیری غیبت بکنی دروغ بگوی، مردم داشت نام بیتی که تو مردم جنجال بکنی لا رفص ها ولا فسوخ ولا جده ها در حج به هم مجدلن نکنیم جنگ نکنیم نکنی. کار نکنیم اگر این کارها را کردیم چرا؟ به خاطر گفته لا رفص ولا فسوخ ولا جده ها فلحج بس هر مسئله اسلامی رو با شما سرش بحث بکنیم هر حکم پیوسته با اخلاق است و حیا جز ایمان است و حیا در اساسات ایمانی است و الحیا شعبه من الایمان رسول الصمد این خاطر لباس به خاطر ازین و شما در دین اسلام لباس از یاد تاکید میکنند و خاطر از اینکه لباس شخصیت اخلاقی انسان کامل است پیش غربی ها بی و برهنگی اخلاق است و پیش مسلمان ها لباس داشتن و با بودن اخلاق است و این اخلاق بگویم که با دل ما حسن و دل ما لباسم دل نخیل و ما کنن مؤمن و اذا قد الله و رسول و امرن ان یکونه لهم من امره یعنی یک مرد مسلمان و یک خانم مسلمان اینا اختیار حق ندارن و اختیار نداره وقتی که الله فیصله کرده باشه و رسولش فیصله کرده باشه و در پیشت آیات و احادیث باشه بواسطه اینکه قرآن میگه ان يكون لهم من امرهم. اینکه باز الله وقتی که کرده يكون من امرهم. و من یعص الله و رسوله و الله برمو یکی هست با مخالفت الله رمی کنن و مخالفت رسول الله رمی کنن و این خب فرزوی تحديل است که تو فیله برسول الله صلی اللہ علیه وسلم نیستیم بس لباس یکی از مسائله است که این ما نباید همین قایدی که بسیاری کسا برمو اختیار هر کسی یعنی اختیار هر چیز چیز اگر ایگر به اینکن اروپایی غیر مسلمان سیکولر بیدین و یک کمونست و یک انسان که عقیده اسلامی نداره بگه درست است اما تو که میگی من مسلمان هستم باز ای به تو با خامنه لا اله الا الله محمد رسول الله تکر میکن تو میگی لا اله الا الله هدف دینی است محمد رسول الله راه که من به هدف خودم میرسنم پس تو که تو میگی من بردازدم، الله میرسم، ولی محمد رسول الله را با آن شرکایی که برخوردار بود، نیست نمیپزیم. من خودش میخواد انتخاب که هر کس اختیار خود داشت و هر کس میتوانست خودش تصمیم میگیره و عقل خود میگرد قرار میداد، از نبود که پیغمبر که هر کس دیروز هم لباس میپوشه. از خاطر اینی اندیشه‌های غیر اسلامی است. اول ما، اول، است که انسان ظاهر انسان وقتی جور میشه که باطن انسان جور شد باطن انسان چیز با جور میشه که وقتی انسان قرآن و سنت اساس زندگی خود قرار بده اما اگر اگر نفر گفای مارکس یا گفای لیلن یا یا گفای خروچوم هم یا گفای فلانی را اساس زندگی خود قرار میده و میگه ما بیدین هستیم ما برنایز اونها کار نداریم. خلاص تو میفهمی این کار لیکن از نگاه اسلامی اگر میگید من مسلمان هستم پس مسلمان باید این قسم اندیشی نداشته باشه که زید قرآن و زید سنت باشه پس ما در لباس م در اعضای بدنم در در ناخون گذاشتن و ناخون قطع کردن رنگ ناخون زدن یا رنگ ناخون نزدن سر خودم و چقدر اندازه گذاشتن مثلا آی محبت دارم که مثلا های خدا بکنم در کل از احادیث آمده در کل از احکامی است که رسول الله صاحب بر ما بیان کرده این کار را بکنین؟ این کار را نکنین مسائل اختیاری ده قسمت نیست دلمت را کنید خودم هست من چیزهای خود را عبرهای خود می کنم که چیزها باز این عبر خود را که کردم باز کرد قلم ابرووز خوبی خق بهتر پیش بر بسیار نه حیث پیدا بر است که بر م لعنت پو از روزدارایی که واشمات و گار شما که مثلا بعضی بعض زنایی که حالای سده پیشانی خود میزنن و حالا از میکنن و ابرووی خود میکنن دهین ادیث شما بخواه د یک ک که ما بازم در درس بعدی چهال در بعدی که سرزی و بحث میکردیم تا میرم که کندن خاندان برزن حرام است و لعنت پیغمبر صلی الله علیه لعنت خدا سر زنا است. پای زنه که زن خالکوبی میکنه روی خودم میزنه. اول از منظور این جه یک منس مثلا این درست است که یک آمریکایی یا یک اروپایی بی دین و بی ایمان در وجود خود مثلا خود یک جنسیت گاجتام است جنس بانوی جه خود اکثر ما رو میزنه. اما موادی منسی مسلمان حق نداریم الله الله محمد رسوله. بعد از تسبیح الله انا با این نام الله تو بتاشناه میگیم بهنا بهزنده مقابله لا اله الا الله و ده شون زائره احد الا الله مشتاكله في در حالات کسی که تو بس فقط میشن فقط تو نوایتی طلب بکنی ما تقلید قران نه حرکت در قسمت این اینه الله جل جلاله بر ما دو قسم لباس بیان کرده یکی لباس مادی و حسی هست که یعنی به لباس شما میپوشید و این از خاطر ای گفته که لباس که چی است؟ اعضای بدن شما را یواری ساوپتکون می پشارد شمگاه های شما را ویشه و لباسی که شما را زینت می یعنی شما را زیبا می سازد. پس لباس که ما عیب های ما می پشارد و ما را زینت می این در بخش مادی است. و باز قصرات دیگه یه پنج شریباز می و لباس و تقویر. و لباس التقوه باز اینجا الله جل جل رو برمان باید و التقوه لباس التقوه خیر این لباس دوم اون معنویت است یعنی مسلمان در پاروی ازی که لباس مادی داره که او اعضای بدن شمیه پوشانه و این زینات شبهش ایره مزیاد میسازه در بین از حیوانات ایره فرق میتنه در پاروی ازی دیگه لباس معنوی هم باید داشته دا باشه که او لباس التق که خود تقوی یک لباس است شما شاید مگرد میشه؟ بلی وقتی که انسان تقوی داشت خود به خود انسان تقوی از کارهای که مخالف شریعت است از این دوری میکنن انسان مسلمان در پالوی از اینکه لباس ظاهری میپوشن این لباس ظاهری از این به شرط این لباس مادی درست لباس میباشه که اساس رو تقوی باشه یعنی من لباس میپوشم و کدام از از این ای لباس مچی هست یکی لباس تقوا است که معنویت هست پس ما لباس به خاطر زی نمی پوشم که مثلا دیگران افتخار بکنم وازیرا ما شما پسانتر میخواهیم که کسی که به خاطر لباس افتخار می و خود خودنمایی میکنه و میخواد که دیگران را ل... نشان بده طلب بعدو چی جزا داره اگر ما خودان به لباس تقوا باشیم در فکر و اندیشه خود مییم که ما لباس می تا ما مطابق احکام شریعت اسلامی از بدین های بلباسی از کار اه... که شرع است از چیزهای پوشش از لباس تقوا لباس معنوی است که این زیر بنای لباس مادی که لباس عادی است که ما شما می نکته دومیه است که از دیدگاه دین مقدس اسلام در قسمت لباس حرمت مشابهت زنها ها و مردان و مردها بازارھا اینجا حضرت ابن عباس عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی اما امی ہے کہ لعن مثلا امروز ما سری بچا ها میبینیم جوان ها هست در مرد هستن به سرا هستن خود بازارھا و دکترها ها مشابه همی. مثلا بچه جوان اس لب سیرین میکنن بچه جوان اس چشم ها خدا مثلا ابرو های خدا چشم ها جور میکنه حتی چون اتصال ما کردن دو اسلامی اگر برای زینت باشه ولی مردم ناروا هست اگر مثلا برای سوال دوا یک مرد شوانا مثلا شش ماده میگه که او یک نوه دوا هست برای چش به حکومت اگر زینت ماشمار قوی سیاق با صواب برای که یک نه چشما زینت از نگاه زینت یا نارواق است پس مرد باید مشابه با ها مشابهت با ها اینه باز که حدیث بیا پیدا میشه چی میاد حضرت عنب نعاب باس رضی الله عنه حضرت عبدالرب نعاب باس رضی الله عنه چی میاد؟ میگه لعنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم المتشبهین من الرجال بالنساء لعنت کرد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سلم المتشبهین من الرجال بالنساء که خود مشابه میسازن بازنها انال باس کی سوال شما مو خیلی دیه مشابہت با زن چه قسم است و المتشبه به هات من النساء بالرجال رجال هر چه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم لعنت کرده زن هایی را یا خود مشابه با کی بسازد؟ با مرد ها بسازند و در لفظ دیگه چی نگلعم نبی صلی الله علیه وسلم سلم من الرجال والمترجلات من النساء دیگه میگه لعنت کردن نبی کریم صلی الله علیه و سلم المخنثین من الرجال مردهای خلصا صفت مردهای که خودش مرد است لکن کارهای زنها رو میکنن که یک قسم خلصا رو مالون بیشن و همشان مترجلاتی من النسان همشان مردهای که زنهایی که مرد صفت است صفات میگه ولی مرد این زن مردان صفت است چطور مردان صفت هست؟ دقیق رفا قابل یه ست مرد مبرای سراملوچ سر هست ها آسین آدم برزدن هم؟ همشه رجاله که تو این قسم مردان صفت هست این سر و تو لعنت رسول لعنت خدا هست رسول رسول میگه سر تو لعنت خدا هست که تو عد اقل سطر نمیگنی هستی این تو از دید. مردان هزن هست چی مردان هزن بیبی بی ور در مقابل ابو جهل خیسته شهید شده آه اگر او قسم باشه میگیم آه اون باز مردانا صفت نیست زنانا صفت بست لکن غیرت داره غیرت باز مردان کده بیشتر است یا بیبی بی نصیبه ور از رسول الله صلی علیه و سلم در رضوی احد دفاقت شمشه را گرفت در مقابل دشمن میجنگه میجنگه او قسم آه، اگر او قسم بگیم باز ضرورت نداری که ما او زن باز به مردا بکنیم با بلکه باز مردهای بیرهی رد خودم از او باییم که شما غیرت رد آصد از اون زنهایی که رو خسد فرحرمان بینن اما این که مثلا یک زن بد اخلاق هست به حیاء هست به شرم هست 24 سال که مردای نامحرم استاد بشن واح یه چا معلوم میشه و معلوم میشه چهار طرف تمام روز دکاته السلام که دکاته ما نداریم کجا میرید برای یه در کچالو برید فاست کلی فشار فاست کجا میری؟ آقای قربان جان کجا بخیر بازم میگه او والا بر میگه راغدات دارم وجود تو را جان که از یم میکنن بسیاری میخوان حالا را میبین فسان بعضی که نام شدا میگیرم تو قابل نبره که ما غیبت ما را خدای رحمت تا کنه شما ها مرز فتنه این شنوزن‌های بی‌حیا هستن شما زن‌های بیدین هستن که انو اخلاق اسلامی رو ندارن و حیا و ستر اسلامی رو نداره و در پرزندگی سر پا محال می‌کنین یا مثلا که اگر جنگ دست و بس کمر از بسته می‌گرا و تو مردانه مردانه می‌پوشه او یول نمی‌دیم اگه ببینیم زو جنگ کردم کجا دیر ما چه یک خوبی انو خورد در جای جنگ شد دیگر هم بچه‌هاش پرسان کاری خانی ما اگر نوابات دیرپوان در یک جایی بود که اینجا چشمی ها بود دیگه سبین یک زده نگ زده نمشید باز با هم بچه ها گفتم که در این یعنی جنگ زنا هست جنگ ایلا کرده بسید چه خوبی به مادراتی دیدم شریط چه خوب مردم هستن جنگ ایلا کرده نهتر گفت که نهی واقع جنگ ایلا نکده چی که نفره هستن که تون بارا مردان ها رو کشن یعنی مردهایی که خارمان خدا به این شکل یا در روز قیامت در جلده مردای خرابه که دال یا با سیل گفته سی میشن خدا اینا خواسته به اونی حساب میشن و این زنهاییش خواب لحظی خدا سرازینا نازم میشن به این شکل و حضرت میگین این صفت این صفت نیست این بی ایمان صفت هست و قلبوزی ایمان نیست سطر نیست تشبهورا اجه علما میگن خب وقتی گفتیم تشبه میشه میگن تشبه احیانا در لباس میشن احیانا در سخن میشن و احیانا در رفتار میشن یعنی که مثلا لغات مرد هایی که مشابهت با زن ها میکنن و لغاتی خداسر زرهایی که خدا مشابه با مردها ها میسازن اینا علما میگن به سه شعل احیانا در لباس میشن بسیاری وقت ها که یک مرد لباسا چی میپوشن زنانه می پوشن نباس های زن آنمی پوشن یعنی آیا ضرور است یک مرد مسلمان جوانه که این باز در آینده میخواه میگه من با شخصیت باشم بازید میخواه کالای زریبی می پوشن یک هنگها که زریبی پوشن به هر هست یا لباس سرد بو یا لباس زرد بو اگر مرد مسلمان در حریص و برای بر مرد مسلمان اجازه نیست بیرون ساق بپوشد برای مرد مسلمان اجازه نیست که کالای سرخ اجازه نیست که بپوشد یا کالای زرد اجازه نیست که بپوشد رقبایی که مخصوص خانم ها هستند پس به مشابهت با لباس میشن بعضی مذهبی و بی ایمان هستند در گردن خود لاکت میبردن مثل زن هاوار اگر لاکت میبردن مثل زر اولا اوقات ترسیده یا یک ازバージون لاکهتاکه مردانه اطلافروشی ده لاکهتاکه اسم الله مردانه و یگان یعنی توایته کرسی مردانه قرار بدن. اما از نمی تود اطلافروشی کنن. یعنی وقتی که یارو میکنه. اینی این مردهایی که امیر حساب میکنن، این اینی از نگاه لباس مشابهت باکی کی پیدا کردن؟ بازارها پیدا کردن. یکی لاکه بار دو که لاکت انداختن کار زرخاست. این مشابهت دیگه دو نیست که خلاو مخصوص صنا خاص. ما اکثر اشتلو حرام است. نه مرد طلاع اینگشتر بشیده میتونه نه چلق بشیده میتونه نه سر چاکی طلای ششتر میتونه نه سر لباس طلاعی یا هشتی زیورات طلاعی باشه مرد اتا در گیلاس طلاعی آگموشیدن برای مردها ناروا و حرام بس. از اصلا احیانا تشبه با چی میشن؟ احیانا تشبه با لباس میشن و احیانا مشابهت با زنها یا مثلا زنها هست بسیاری زنها ها حالا به کارهای پنجابی که مثل کارهای مردها رو نیست که اولاد از گارن سطح رو و خدا به هیچ روایت به هیچ کتاب پوشیدن ای کارای کارهای پنجابی که زنهاده اینجایی پوشن این حلال نیست و نیست و هیچ وقت زن که گالیزه، تو زن خواهره که صدای مرم بشنوی بسری وقتا سرمه انتقاد می کنید از مزبیش خود میگه لکه مرمی، لکن امی تو وقتی که می کنید خدا در روز قیامت با لباس تو محاکمه میشی، محاسبه میشی، نه تنها خودت محاصبه میشی انشارا شیرابا، جانت هم کلت میشه که برای تو شیرابا، قواهی فیدیو بیاند ایناله در لباس است. پس لباس بسیاری وقت است بیشتری مرد مردم است. دختر خود کاره بچه‌گانه می‌پوشد و دختر که بچه ها سال تیری تا دو سال دو سالگی ساله فلانی بچه نداره. این دختر خوده بچه سخت. بهادر؟ بهترین هم حرام روا هست. اگر من سام وقتی که تفلکه ده ساله شد و آمر کو به نماز وقتی کل عمل کنی به نماز بس حرام بوده چه داده دادی؟ نصبی کار هم باید یک مسلمان دوای در لباس بسیاری زمه ها هستند مثلا لباسها درشی دریشی مهم مثل دریشی مردها رو جرم میکنند ببراید تمام اعضای را بالون میشند از این خاطر اینها در لعنب داخل میشند پس نه جوان مسلمان مرد حق داره که خودموش ها به زمها در لباسهای خود بسازند بسیاری مردها ها مثلا در موی پشت سر یک تا را کمیزن رو چوتی میکنند پشت سر بی ممشیره جا رو کمی پیشون رو بس که چی من برای این لرکی سوی لرکا برام خیلی ترزید من چطور بودم بس این داره آره واحد که ما مشابه با زن بسازید به نه هم در لباس در موی در ساختمان موی در پوشیدن لباس قتلون دون در قسمت بساز خبست احیان مشابهت بعضی کساز میگه در لباس من لباس مردان است لیکن حرکت های زنها نمی کنند گپایش گپای زنها برسند علا جای جا بشی و علا آیان بشی و علا تو دور کرده چه دو و علا فلانی کرده و خدا زنها وار یکانه که خودتا خیلی عقب میده بشیم و چه طرف بیگه شده و یکی پای را این همین حرکتها برای یک مرد برای نیست مرد در عادتا در زبط هم مشابهت با زنها میده و قد یک خون فلمشی ایر که احیانا مشابهت در رفتار میده بسیاری کسی مثلا حرکتش حرکت عركات زن ها ورسال بسیاری بچه‌ها رو ببینی که بودها یک زن تک تکی میباشه مثل زن ها وردن درها تخت تک تک تک حرکات شست پس انسان نباید خود مشابهی با ها در لباس بسازم، نه در چیره بسازم. بسیاری کسی که دیش خودا کلب این هم مشابهت با زن ها میه یک بباشید سالی که روید این مجلس هر کسی برای این پس خداوند خسا، یعنی خداوند آخر فکر خداوند میگه باشه، یعنی ترسات که میل نداشته باشه. چرا؟ روی نرم و کریم زدگی و یا پاکس برای مرد نیست، برای مرد نیست. حتی در حدس شدیم میخوادم که میگه برای ما هم میفته. میای خدا، خوب پاک نگه بگیر زینت بدن. باز دریافت که میگه مرد مراکش کار روز میادش حالا نگو، میشه اگر یا گذاشته میشه حالا یه دستیاس، دمیاد یک تو با صفات مردانه داشته باش. صفات مردانه داشته باشه که شخصیت رو حفظ ببنن. از این خاطر یعنی در لباس در چیره در کلام گبزدن و در رفتن و حرکت کردن نشستم درخواست برخواستن, برخواستن در چیزها باید اینسان کوشش بکنه که مرد مسلمان خدا مشابه با زنها نسازن و زنها خدا مشابه با مردها نسازن یک نیست مرد با او یعنی جوان نباید خدا مشابه با اخترای سودا و دخترای جوان خدا مشابه با مردها و بسراو نشود یه یعنی چهار نقطه خوب اینجا میگه بعضی کسا پرسان میکنه یک نفر اینم تو خویش است خلقتش است اینم تو راز دیگه یه گونه آواز چهار بیشینی که کسی کالوشیده من دوست دارم های را رو چی میکنم خلقانی میگه ای جوان مسلمان چی؟ مثلا اما تو خلقتن یک کم, کم کارهای زنانه ای داره کوشش کنه که خدا بیادت های خود تغییر بده اما اگر نمی خوش باشه و راضی باشه و به این شکل دوام بدن باز گناه آلوده یعنی کوشش بکنه, خدا جور بکنه. که خدا جول سم می مساله که مساله لباس است که مستحب است که انسان آثار نعمت خداوند در لباس خود نشان بده یعنی ببین، بعضی کسا بخیلی میگن در مارو لباس درست نمیپنشد و بعضی کسا هستن که فکر میکنند دین مانایش یه است که که تو دیندارستی باید لباس خوب نپوشی نخیر. دین مقدس اسلام برای انسان اجازه میده که آثار نعمت خداوند در وجود عزیزی دیده شده ببین، ابل احواست از بدر خدرواهد میگونم اگه قال اتایت النبی صلی الله علیه وسلم فی ثوب دونین یا دونین یا هست و اینجا گفتند یعنی منظور میگه ما آمده پیش نبی کریم صلی الله علیه وسلم در یک لباس که ای بسیار یا حقیل یا لباس بسیار خراب و بسیار لباس پیوندی و کونه و تکتکه و خراب یعنی اکسپار شده گیه دیگه بسیار گفتیم آبا شما لباس های تو شده گیه فقالا میگه نبی کریم صلی الله علیه و سلم دار که علکه مالا شما مال داره؟ اگر خریب است که علیکه اما اصحاب مبارکی که پول داره هستند داشت بگوبرتون یعنی آن لباس کمک بگوبریم علکه مالا میگه نه قالا گفتیم نعم بریم نبی نبیص اسلام قال من ای المذکر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلام در جامعه متوجه بود به هر چیز به هر چیز متوجه بود لباسای یک انسان هم وقتی که مریض اگر فقیر بود که توسط میکرد خودش واسش نمیریزه یک کس دیگه برش کمک نکرد از خالص بیت المال برایش کمک میکرد یعنی در هیچ حالت در اسلام به من گفتن نیست مسلمان به بمج بمج حضرت و من قدیرات یک شومه خلیفه هست کوچه و کوچه میگرده که باش امنیت از آرامی هست کدام مشکل کسی داره نداره میگه در یک صدا هست کدام خانم مرید صدای عظیبی هست میگه دروازی باز میکنن دروازیشانه تک تک میکنن شوارش میبره چرا برادر عزیز میگه خانم بخ المخاط و مخاط در زبان عربی وقتی که یک خانم در حالت مرز بلادی می باشه که اصنای بلادت شخص درد می بینیم برشمه که در حالت مخاط از خانم موزی خاطر احساس درد بگن و ناوه می دن اصلا تو مرد اگر شما ببینیم اگر موتو باشه بینیم خلاص من مرد است من دیگه به اینش کمک وقتی خود بیگانه است و بر من نامحرم است و من چیز کرده نمیدن خب یادر خدا سر رحم کنه با ما نمیدن اما حضرت و, و, و, و مرد و تانه حضرت و مرد و تانه نه نه رای حل در کجا هست چی کمع میترم رزی بکنم دویده دویده میه پیش اوگو کلسوم خانم عزت علی دختر عزت علی کرم الله باشد عزت الالیس های دختر خودم به عزت عمر را تلات الان ایناله کسایی که برادرای عزیز قند شیرین ما که عزت عمر را دارد او را که یگان گفت شتی میزنن تو مسلمانی که به عزت عمر حال عزوگلا کافر است و میگم من مسلمان هستم تو عزت عمر کافر گفتی لیکن به این نگاه بید عزت هم کافر گفتی با خاطر ازی که وقتی که یک نفر به کافر دختر خواه یه دختر خدا به کافر بوده؟ خودش هم حالا بلا کافر میشه پس تو می که تو مثلا میگی که خودش مسلمان بود خب به هر صورت عزت به من را دلتالان ها میگه پیشه اوم ترسون رضی, رضی الله تعالی عنها و برش میگه که ای بیبی، بی آیا میخوایی که دروازه از دروازه های جنن برای تو باز باشن میگه خب چرا نمیخوای پس میگه خانم در حالت تکلیف مشکل است نیاز داره دارد تو که باید همین مشکل از این رحبه بکنی و در حدیث شدیف است اگر یک کس مشکل یک نفر که مشکل داره، و یه میتوند هم کمک بکنند تا مشکل از این مرفوع شدند دیگه خداوند مشکل هست مشکلات آخرت از این خلاص میکن در روز قیامت از مشکلات خلاص میشی. و مشکل آخرت چی و مشکل تنجی داختی است که دروازه جنت درو بسته باشه دروازه جنت قرب و پاست بشه میگه الله که فرنده نفر کو کردی از اینجا حضرت عمر رضی الله عنه با امی بن کلثوم من در خارج مدرکه و دروازه ش تاخ تاخ میکردم نفر می رفت در پیش امام دولت پرسون کرد میگه می خارم آوردیم آ 2 کس از آسمان پایین شد دینش بشم یعنی دفعه آمد پرسان کرد و آن خانم اقضایی نسم شد بسیاری داکترهای هستن به ایمان و خدایی داکترها در روز قیامت با ز های آتشین بستا میشن و دار روز قیامت که نصفش یک نفر میبرش بسیار تکیل دارددارن کس در واکس۲ش او بر نکی تا که مجبور نش و ح یک مریض دارم یک پیشکاری یک ماهین اووادار و این م جازه بیرون چیز میکنن من من میشن و خومت خراب من او رفتن همتون دکتر سر حالا که ده هزار کت نماز میخوانیم و که توی یک نفر تا صبح ماندی که و به ت هستی اوناله اینقدر داخل میشن حضرت عمر در داخل است و این مرد خانم داخل می و این مرد هم حضرت عمر در در بیرون است حضرت عمر رضي الله تالاون حال که خانم ها می متوجه شد که یا غریب هستند شاید عمل آگاهی نداشته باشند یا کمک که روغن و هم چیزایی که وقت برای خانم لیتی میگن و به پشتو میگن شیره و بخایونه میگن چی میگن از انو یک زره مواد دیگه که باید قانون بخورن پرشگان دارو وقت با خورما را گرد میکردن امرو سویق میبودن باست یک کمک خورما را کردن من شمی شیروی یک خوب نه و این مرد میگه که دیدم که از تارهای ریش حضرت عمر اطلاع که پف میکند آتشا که در دیگه هم گرد میکنن از تارهای از از ریش عزی و میگوند همونتو اعلان بانده که یا الهی این هم ملائکه هستن یا از اسمان تارسته یا اخو مردم زمین نیستن یا اخو اهل زمین نیست ایچه قصه تین اسمشه بالاخره از بیلی نبراه و برشمه اگه یا امیر المؤمنین یا لا اله الله محمد مالفر چی؟ یا امیر المؤمنین برای دوست خبر بده که خداوند خداونتو تفل داد بسرگه امیر المؤمنی در خانه همه امیر المؤمنی در خانه همه و با خانی ما آتش در میدارم و دیگه آتش شباف میدارم عربی عرب میکرم و خانمش در. امیر المؤمنی امیر المؤمنی با معلی که با چای فارس میگه نفسی دست از چونی در نامش امپراتور از بسید های روزی مفرومه این طبلت های روزی کل وله های شهست مصر بی بی مزید ایران بی بی مزید کلی شهزه وله های شهزه تو مغاده دادا میهن خانمه و این کاره میکنن و خانمش خانمه پرستاری میکنن حضرت مغاده افتاده مجموعی بلدم تو خیفت شد ما که تو مکتب رسول الله هستی ما نو مکتب نبوت مکتبه که اخلاق است ایمان است کار عزمت کشی است خدمت است را دونه دونه نصب کردن آتش سری واه ما موه کز ششانه بس بیا نه فر میکشیم دیگران سر دست رو کرده و دیگران را پیشی مکنیم ما تا بالا بشیم نه نه ما ما اصلا مشکل ما هست که ما تا وای نکردیم نگنیم درست ما متأثر به این شاگردای این مکتب نشده ما شاگرد رسول اللہ صلی اللہ علیه و وسلم خدا نتانستیم بسازنیم ملا شاگردهای بودن که اگر در عالیترین مقام در دنیا می رسیدن باز هم در عالیترین مقام در اخلاق عالیترین مقام برای یک انسان چی است؟ که اخلاق عظیم داشته باشیم جارو رو در سخوت بیده جارو بگنه جارو رو در سخوت بگیره جارو چرا سابق شاگردای شاگرت های که در مدرس ها هر میخوندن حق کدامشان؟ حق کدامشان توتی از اخلاق بودن سون ای آله میگدامند دست ها دست خونده سهی بگیم سون چهره چهرهش حرکتش خوشد میامند اخلاقش خوشد میامند گفزننش خوشید میامند چون اونا هر کلمه از اونا از قلب با تقوا میبنند شاگرت ها تشنام بود تابود ماشوارده بین نخود اختلاف کردیم. و گفتو تشنام، آگو گفتو پاگو گفتو پاگو. گفته گر سو با که میخند سو صوب سو بی تشنام آگو است. یعقوب رو روز دو روز سه روز چهار روز پاک است تشنام. این آمین کیو سو خان الله. ای تشنام کی پاگ پا یکی گفته چرخ پاگ میگه، یکی گفته ماشیو کی پاگ دوسته. گفته که یکی تحقیق کردیم شاید که کی پاگ میگن. گفته که شیخ ما امیشه ای خود حدیثی که بر ما صحیح گخاری و صحیح مسلم درست میکنم این که دو وجه خیستم اما رفتشنا و خاک خاکنداز را پاکند در دو سفل <سؤال> خاک دارد و جایز خاکنداز را رفتشنا بارد و خاک سر باشد باز رفت ست گرفت خدا کرد بکند لباس های پاک خدا پوشید و باز باز آمد نماز در هر این عمل کرد از این در شخصیت مو به قدر تاثیر کرد که باذی ضررات نشد کس نوبت کنه نصرت اشناب ها وارد هر کس دیده دیدم میرفت نوصافت و جارو و پاکی تو را وقتی قسمی نبود که نوبت است که امروز دیگه تو گفتم امروز نوبت است تو بگو امروز خسارت تو می شو امروز بلا نیلیگو ایست چی میشه؟ کبحتان حایرت است که مولانا بسیار خوبه مثلا تکبر ندارد تکبر اینه میگه از تششتن میهمان خجالت کشیدی باش ماندن و پشت مهمان صدق هست از دیدگاه دیری مقدس اسلام تو که از می بی سنت پیغمبر بربر سم خودش جالو میکن بربر سم بوده خدا خودش می لباس خدا خودش میده دخ خوددا خودش ن نکن برمر مثل یکی از افراد نامامین خارمش میکرد مثل یکی ازات فامیل کار میکرد بسیاری ا میگه من متوازی هستم از سلام دادن در رخی جالب تو متکبر هستی تو متکبر هستی ا د جبرد مقابل نهی سلام نهمیتي د موت بالا سلام نهمیتي ک سلام علیکم راست تو بالا میشي هکه م سلام بتم باز کس والک آه باز او باز مدکه صاحب تکبر م چطور میشه خهلاص تو سلام تا بتي خدا کنه که خدا بره، ګونګ کنه که سلام ته والک نه تو اسلام خوده تو تو از خود شروع پس وقتی که مو سلام درا بر مردم در کارهای اجتماعی خود ما شرکت نمی کنیم خانه خود جو نمی کنیم بر خانم خود سلام نمیتیم اینا آثار اساس شیطانیت است اساس تکبر است انانیت است من خودمیشم والا به گفت میگم که من چی نه نه, نه نه نه اسلام حضرت عمر رضي الله میشه پس رسول بنا اسلام صلی الله علیه و وقتی که اینا برمیبینی کی قسم لباس دارن لباس دارم پستانش میکنم که پیسه دارید مال چرا تو لباس های تکه تکه و پارا پارا را بشیدی علکه مال؟ برای پول داری؟ این صحابی مادم میکنم بله دارم من اجیل مال باز رسول هستم پستانش میکنم من اجیل مال پس چی مال داری؟ یعنی به خانه تو تو شاید بلد کسا باید؟ بله من بله دارم تو شکر دارم بالا کالا ها ندارم که فعلا ندارم می‌خرم باز رسو رسونیه قاله قط اتانی الله و من ال والغنم و الغنم و و گفت الله جل جلاله برنا ان شطر هر پس صد وقت که شطر داشتم که موتر شخصی دارم یعنی موتر شخصی هم دارم والغنم الغنم هم دارم یعنی وقت گزفن مثل دوکان است الان صاحب یک سوپرمارکت هم دارم خیلی این اسبام اسبم والله دقیق دیگه کونم که وانا خدمتگارا و غلاماوی که باهم درست آ رسول الله صلی الله علیه و بر درد رسول گرامی اسلام بر هر کس مطابق مزاجش برش تبلت میده یک نفر میاد دروغگو بود واسه می رسول خدا فرمان نصیحت هم دروغنا نکن خوین که ادم دروغگو است بر از این تو ونه فردی که میفهمی که مادر پدر اخلاق است باز برای زمین کات مادر اخلاق خوب بگو. کس گفت فاذا وقتی که الله جلجله و بر تو مال داد نعمت اثر نعمتی علیک و کرامتی. گفته بس پید اعصار الله و اعصار الله که با بر داده عزم داری شوتور داری مال داری خانه داری زندگی همه چیز داری پس چرا آثار نعمت در وجود دو دیدنم بشه که این قسمی آمادی با ی لباسی که من فکر میگم تو یک چیزی علی خاطر در پوشیدن لباس آثار نعمت الله جل, جل, جل رو باید چی باشه لابد آشکار شد آثار نعمت آشکار شدنش ماراش این نیست که ما لباس رو غرور تکبر بپوشیم از این خاطر باید انسان مسلمان لباس چی بپوشه در مردم مندما هستن که در لباس بعضیها ها افراد میکنن و بعضی ها تفرید میکنن و اسلام نه افراده مثل مثلا مثل یک نفر میره یک دونه لونگی پالوی مثلا 5000ی یا میره بسیاری کسایی اینم یک جنایت است هم با ولی یک مسلمان اجازه نیست که بپوشه همین کلاه ترپولی کلاه ترپولی جنایت است نه در جنایت سهم بگیری ناروا هست اگر از حقوق حیوانGetMapping گرد دنیم حقوق حیوان زیره پای شما ببینید، این این جنایت بزرگ علیه میهن و شما هست با حضرتین تجارت ما اساس جنایت است و این جنایت است و تجارت از این حرام است و ناروا هست یک حیوانک نا متولد میشن نا تولد میشه چه چت گوسفند امروز مادرش گوسفنده عادت داره که وقتی کوچک تولد میشه شه بعضی پیش هستی که اون فکر کردم از به مو اسلوب بذارم. پیش از که طفل مادرش بلیسه و او آتیا مادرش با اوتفلک کشورش پیش روی مادرش اوتفلک میگردم با خاطر دستی که پوست دزی وقتی که پلیس باز میکند که کامپوزیت کلاه کارپولیه این ما های سالم خدا ناترس بی هست باز این کامپوزیت دکلار کاری باز خراب میشه باز هم قیمت باز امید چیه؟ کار آیا ی در مقابل یک ما حق نداریم که یک یک یک یک یک حیوان مسکین به شکل در حقش جنایت بکنیم و حیوان مادر است و این تفلک نو و به شکل بازی ما بخاطر خاطر خاصه که بمنک لا خلره بامکن هفت هزارو هشت هزارو د هزار و دوازده هزار کلا ب افتخار بکنیم پس بسیاری کسا باز متوجه ازی گپ نیست اگر کدام رز که مثلا م سرلج من دید با سرم انتقاد رو او استاد شما سرلج شماده ای نه مالاها سرلج میگردن خود تو که سر تفوت کردی کردی چی پوت کردی؟ از کلا جنایت؟ تو خنوز از کلا ترکولی کردی سرلج بگردی؟ هر روز من خوب از درخل جنایت خونایی کردی؟ جرم بکنه کردی؟ از این خاطر بعضی کسان لباس با اخراط میکنن؟ در حق حیوان جنایت میکنن در حق دیگران جنایت میکنن یه درحقیقت و مسکین بیچاره که خیر از اینکه یک متر متوسط بگی 8 متر چار متر تا که یک 4 متر باید یک فقیر بگی یا چار متر به اولاد خود بیفتی و یک یتیم کمک بکو, کمک بکو. و به یک مسکین کمک بباذ افراد بگیره و بعضی آمیخی تفرید میکنه میگم که یک نفر ببینید در نماز و, تا نماز که شد و, که و در خوب کل اندام که ابت ما روش گاهاش کشتن ای لباس هزاران بگو باید کاسیات تو هم کاسیات و ناریات شدی وقتی لباس لباس دیگر که قسمی لباس رایی افراد دیگه موضوعی هست که همین لباس بسیار در پشت پا ها چیز ها چیست؟ اینجا بسیاری کسی ها سرمی پاچه دنبار خدا قالون قالون جول میکنه و با خود های در روی خاک میره و تجیزا میکنه ایشا چنین میگه که پیغمبر سلام میگه حضرت بخوره بکر رضی الله تعالی میگه میگه لا ينظر الله يوم القيامه الى من ازاره ازاروی بطران میگه الله تعالی به نظر نمیگرن بطن کسایی که ازارشون کشو از روی زمین منه و اله خاطر تکبر میگن به دران بسری وقت ما در قسمت انفی هم باشیم که لباس های ما برای مردی تا که پاسش بیرسه باید از وجود هم باید در پان سال یک رواجه که نباید رو کردن بایده بسیاری وقتا که علمه های ما هم گیره اشتباه می کنن ما وقتی که در نمازید باید بیا دارا پاچه هایی تونن از وجود های چی کنن؟ باید این فکر مخصوص تنها به نماز هست؟ مخصوص تنها بر نماز است بازمان فکر میکرد خلاص در نماز پاشا رو برمیدن که از نماز پس جا شد بازمان پاچا شنگ در زیر کوریل باش میده نه خیلی حکم اسلامی که است در نماز و خارج نماز است اگر کس تطبیق میخونه با میبینه نقطه بعدیش که حرام است حرام بودن لباس شغرت است لباس شغرتی است بسیاری مردم ها در قسمت لباس خصوصا خانم ها خداوند بنا اشتایت بکنم و بعضی از جوان که نوجوان هستن، اینو در قسمت لباسهای های شهرت لباس شهرت چیست؟ که ما همیشه اینمین لباسی که ما باید همیشه به موت بگردم همیشه آخرین استایل پرسان بگنم آخرین استایل چیست و این آخرین استایل خودش منای اسلام بر کشیدن یک رو سای پتنون بتمر شاید دم تفاجعه کی جنگ دیگه این روزی است حال دیگه چند تا سر زانیش با بار بار باشه بازی شاید وی انگلیسی بیچاره نفهمن بیچاری وقتها اونا از سکندرون میبشن تا سی لباس نیستن لباسش تک تک میشان و اونا از مود است اون از بی است وقتها در کشورات مارکت در کشورهای اروپایی نختم زیاد صارت لباس حساب نامه بیچاره لباس و نظر در باری فیلانی چی موضوع است؟ باز میگه نه خیلی خیلی برو بخیر. اما شخصیت تو رو میبینم بسیاری وقت آدم بسیار لباس عادی یک پیران تنبان عادی یک بکوزی عادی بکوشی ولی تو شخصیت داشته باشید اونجا شخصیت ارزش زیاده زیادتر دارد و ما در اصفانه که خدا مسلمان هم میگیریم شخصیت در لباسش میبینه. و اونا غالبا وقتی که پدلون زیاد می و با این پلدونش داغ پیدا میکنن و گذاو یهم چرمه میذارن تسلاخیش شب بسته رو. به خاطر مود هست. و یه وقتی از که در قصه لباس نیستون، یک پلدون دارن که نمی عاش، اونوزا وداصا وقت افتیدن. ما بهزور سعی می کنیم برای یاسمود. تو ببین، مویا اگر واقلامون مویا بلند شانه نکردن، ها؟ مویا بلند یک خارجی وقت نداره که شانه نكنه، مویا گذوانه. یه سر دیگه یک خارجی است مثلا میاش خراس پادی یا کسی چیزی دارد. باس این که می میاش دارند مثل مرد خراس میکنند. چیکار پس مود است. برادر، در کارونا به خدا به شخصت کس بلند شد، در این مورد خدا خراس یا یک میسکد با خراس میسازد، یا یک میسکد مثل بودن میسازد، یا یک خدا به شخصت هیچی ندارد. هیچ، هیچ. به خدا در مجلس که داخل میشه آنقدر کدای خیلی معلوم میشه. همین به نظر خودش میشه. سا سا با باهید باگه ای اگه خیلی خوشت میگیم سبا مانگیرد یکی مرد و قراز بارا جور کنه باید میده بیانم سعی معمود کنه زیبایی در صادقی هست زیبایی تو شخصیت عالی داشته باشیم شاهر انامه به در چانست یک میشی میایید اما قراز جور کنم قرازم اینجا رو کامپور میدید، دیدی؟ سرد چندین کامپور مونده. در مکتب همیشه یک صرفه خوامت <متحدث> بوخته 12 سالا در 15 سال می باز پس چی هند؟ او او وقتی وقت مکتبس بالا به میدم چه وقت انسان تو جوان میتونی که ارزش در جامعه پیدا بکنی؟ یه بگوی من خلاصم مام هستم، هم سایت هستم. میگن خلاصم مرا چند نمره میگوا چی؟ تا مازی و ارتباطت با مسجد صلح. اخلاق هم با همسایه انسانیت انسانیانی دتکسی سر. بسیاری جوانا رو ما متعصبانه دیدیم د مادر خیلی دیرش خنده بد اخلاقی باز کشید مسئله کلا. وی استادیان با وقتش ما متوجه نشدیم تو به خاطر من اخلاقت جور می‌بینی. اخلاق با خاطر خدا جور بکو. پس از اینهایی من گیری من نشودی. گیری من نشودی. من ایموزر باز کشید. خبر چیز تا پیش شما شو دیگه خیلگی خیلگی خیلگی مهمه و که متوجه بشن استاد استاد بسیار خوب باشه ما بسیار سر مذرت می ما تشکر از این که به من احترام می خدا برده احترام عزت دادن بر برای من که عزت می ممنون ما سپاسگزاریم لکن این ای سیستم اخلاق نیست این اخلاق نیست یعنی اخلاق نیست که تنها به رای استاد یا به امرای خلسه یا به امرای کوزه یا به امرای بلدیسه یا به امرای مجیب صاحب حواله به خاطر از اینا اخلاق میگن نخ اخلاقی است که با سعیدترین انسانی که میفهمی که بسیار رتب پایین داره با اون بسیار اخلاق عالی باشه اخلاق این نیست که میگه یو کاند یوز چેર فالو اپ ویت مور یوزر استعمال کردن نمیتونید برای که شیذاستن دام پرسان هستن، باید با های پرسان. کس کس تو کدوم بینگلند است؟ باز باز بگویی که سر. اگر از براوایی انگلیس می‌دونستم، تشنگ کردم نه تو می‌خواد ذات اخلاق شماست. دستسیل. اماو تو اخلاق هستیم شما چون؟ ماو مسلمان هستیم، ای خشم نیستیم. ماو هستیم. سر احترام محبت با باز خادم مازیده از کل گردوای احترام زیادتر رو داریم. اخلاق قسم. نه ما سره های کشتار استیوال میکنیم و استاد خود پردازی میکنه. اما بر پیاده ها، باز ها هیچ کلمی اخلاقی نداریم. اخلاق زشته. اونا و اخلاق از است. هست که خدا شرم داریم. و دو سخت من از آن نصفشان دیزن مطلع است، نصفش از ساز مطلع است، نصفشون امرداد میشه. ها میدم. ناکام مردمی نبود. صورتشان ایالات میگن که که خوش آمدید. مولانا، خودشان می خلاق کردین. به علاوه، اخلاق ما اخلاقش هم با اخلاق دیگه نباشه. از این خاطر سعی کنید کسایی که زیاد لباس‌های را استفاده میکنه، خوب دقیق گوش بگیرین که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه، ما لباس می پوشم، انما الاعمال بالنیات لباس خوب بپوشم، قرار ما لباسیناطیق میپوشون گفتوش، اگر میشا قوتی بسیار خوبش باشم، لباس خودا جور میگن درست میپوشون، به خاطر که من مسلمان هستم، آثار نعمت من در وجود من دیده و من متواضع باشم و تکبری که ندارم. نیسا، من یک دانه خوش دارم شش جای گوش خدا بوار کنم. من یک تا ندارم، ما یک تا دیگه گوش بر ایزان کنم، ما ده تا دیگه کنم، تا یک دونم بازت ببینم اینجا ایزان کنم، باز کله اوه اوه و حالا <سؤال> ما هر عروسی باید یک پیرانه نه برو، حالا <سؤال> این پیرانه ما در دیگه پوشیده بودم کلا که دیدم پیش این پیر این با خدا رو بون تو با اولاداره که ما مردم کمیم باز تا به هستی نیستیم چه خواهد ما تا دلوان گو کمیس را و را کسی ها پیسه داری یا نداری؟ برای کمیس پیران که از دلوان اینجا هایش باشه باشد برو و او پیران او غاری جا بس های باز باش خریدیم بازی را از میگه این خواهد بازی باشیده آیا باز تکراری این های که در هر عروسی پیراد نو جون می تا خوده در مقابل دیگران نشان بده این مردهای که تمام روز متراجه لباس هستند باز یکماتی که وقتی کرتی چیزه از اون اصل کوتیگات یا کسانی که گفتم که چیز شما میبینید چیز های دیدیم نوسات نیست نوسات یورو یورو همین هزارمون طرفی که چطور است خلاص کوتیمات دادم آخر مره برمیگردم باش که دلش بخونن فقط میبینم کوتیکات مت من 50 رو بگیش یاد نمیشه من میگم که چل باشه آسی 5 باشم باز نمی 40 35 نموت باز می بخرید من یک سال است دوام می کنه خیلی یخ کردم داشم آخر تبلت چدوری برسه باز نمی کله قفاشی که بده ببینید پیغمبر الله علیه و لباس خود به مردم در لباس نشان دادن و افتخار کردن در لباس ببینید اسلام الله علیه و سلام چی عن ابن عمر رضی الله عنهما قال حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما چی میگن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول صلی الله علیه و من لبث ثوب شهرت فی الدنيا کسی لباسی که خدا نشان بتا و شغرت خدا مشروط بستاده که چه خوب لباس میشید او در مردان کنی دیگه لباس های بسیار خوب هست شما بسیار استایل دار بسیار خوب ستایل میکوشی احب دیگه این حرفید چیر مید؟ خاطر که این لباس ها چیز میکنن؟ البسح الله ثوب مذلت یوم از قیامه الله جلال جلال لباس زلت و خباریه در روز جامت خیلیه میکوشه سیده این رواه احمد و ابو داوود و حسانه الالبانی برقم 3399 و رواه ابن ماجه کل اسمه این احر احر چی روایت کردن؟ گفته سر گبال من لبسم خوهرک قنده برادرکی گله من خوبی سر رامیانه گفتن من بعد دامن نمیشه گفتن من را استادا من را خوش ندارم تو اکادیمیک نیستیم حجم تو لغت نمیگید من این لباس چی میگه؟ میگه من لبیشت سو به شوهاتین کشک لباسهای مود تمام رو زد پشت مود میگردم اگه من باز پشت مردم کم نمیگرد باید باید باید براد براد باید ها باید من لباسه پای تو پوشم ما وقتی اخرین استایل می‌پوشم مباید ای وارثی که مرده او ارثی گرفت بوزن وارثی اگه کتانی پیرادرو پوشم اسمم اومده که بوزماد و یی بخوا برک مبارک گیرم چی که از این برم که از فرانسه آورده بود چیدک فی مشهور بسازد الله ل.. رسول الله می‌خداوند ادامه بده با ثوب لباس زلته روز قیامت چقدر خاطر خاطر چی رسول الله سم.. میگه رسول الله صلی الله میگه که در است، بیچاره است، مسکین است. واسه که لباس می‌بوشی، تو مسلمان لباس که. كل اللي باصده بيشيله بطاله واس سر معدم قال سبحان الله رب العزات هم